خب شما ببینید عبیزر باید تبعید شود چرا؟ چون درد شناسه داره درد رو بیان میکنه و وای به ای که وقتی درد او را به او میگویند، به جای آنکه که تشکر کند و در صدد مداوای درد براید درد شناس را از میان ببرد آینه چون ای به تو بنمود راست خود شکن، آین شکستن، خطاس، عویزر یکی از این چهره است که بعد از پیغمبر فریادش را بلند کرد، من قرعانی داره بیمار میشه به عنوان نمونه دقت بفرمایید تاریخ یعقوبی، جلد دوم، صفحه سد و هفتاد و یک و بلغ عثمان، انعبازر، یقعد فی مسجد رسول الله و او الیه الناس فیحد ثوبه ما فیه تعن علی وقتی که مردم با ابوذر کرد با عثمان بیعت کرده بودن عثمان بهش رسید خبر که ابوذر میاد در مسجد میشینه مردم دورش جمع میشند و یه حرفهایی رو با مردم بیان میکنه که در این صحبتها نسبت به عثمان تعن و سرزنش و عیب و ایراد وارد میشود لذا مطالبی که ابیزر در این جمع بیان میکند میاد نسبت به ارزش اول خودشو معرفی میکنه ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی و من لم يعرفني فإنه ابوزر ذر الغفاري ابو أنا جندد جنادت جنادة بن هر کی نمیشناسه که می‌شناسه که می‌شناسه بشناسه چرا یعنی اگر فرض کنید یه فرد عادی تو کوچه است منم درد دارم نمیشناسم طبیب است یا نه مراجعه نمی‌کنم او میخواد خودشو بشناسونه یه تابلو میزنه چه بسا گواهی تبابتشم قاب کنه به دیوار مطبش بزنه؟ من اعتماد پیدا کنم او میتونه درد شناس من باشه یا نه منو میشنسید؟ که میشنسید؟ نمیشناسید من عبوزر یعنی چی؟ یعنی همونی هم که پیغمبر در مورد من چه گفت؟ گفت در زیر این آسمان راستگوتر از این عویزر پیدا نمی کنید. یعنی اون کسی که دین شناسه است اون کسی که صاحب شریعت است مرا طبیب درد شما معرفی کرده من همچو فردیم حالا دارم براتون میگم ان الله است تفا ادم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علال عالمین ذریه بعد بعضها من بعض والله السميع علیم این آیه رو خون این مضمون آیه قرآنه خدا خودش تو قرآن میگه ان الله است تفا خدای اددر رو برگزیده یه اددر رو ممتاز قرار داده اینا رو شمرد از درمیان انبیا تا رسید حالا در میان این انبیا دو سه تا خط رد میکنم برای اینکه برسم به اسم پیغمبر اسلام که رسید میگه این عده در میان ما چی هستند، اینها کس فیقه هم فینا که سماع المرفوعه و کل کعبت المستوره او کل قبلت المنصوبه او که شمس زاهیه او کل غمر ساری او که نجوم الهادیه او که کجر زیتونیه ازا از زیتها و بور که زبدها میگه در میان این انبیای برجسته این آخری و خانواده شن مثل چی میمونن؟ مثل آسمانی که رفی مثل کعبه که جهت ارزش پرده روش کشیدن که نشون بدن ارزشش رو او کل قبلت المنصوبه یه قبله این که خدا نصف کرده اونا رو نگاه کنید برید جلو او کشمس زاهیه مثل خرشید و نورفشانی که آثار وجودشون رو میدن او کل ساری یا مثل ماه در جریان او کن نجوم الهادیه مثل صدارگان هدایت کننده به ها کذا و محمدون صلی الله علیه و آله و سلطان. وارث علم آدم و ما فضل بهن نبیون وارث همه اینها این آخری و اون چه که به همه انبیا داده اند به اون میرسد حالا شروع میکنه و علی ابن عبی طالب وسیع اسم عزت رو میبره و وارث و علمه وسیع علم این پیغمبر یعنی خدا از اول عالم آدم تا خاتم همه این ارزش ها را که برای عالم وجود معین کرد سی و وارث همه علیس ایت هل امت المتحیر بعد نبیه ها دردو شروع کرد ای امت سرگردان بعد از پیغمبر که ابوذر در زمان عثمان در واقع به شهادت رسید در ربزه با اون غربت از دنیا رفت زمان حکومت ظاهری مولا را هم درک نکرد هنوز دو دهه از تاریخ رحلت پیغمبر گذشته ابوذر به عنوان یک صحابی داره دردشناسی میکنه من بیمار مذهبی جامعه را چه میگوید ایتو امت المتحیر بعد نبیه ها ای امت سرگردان بعد از پیغمبرش ای مردم گرفتار بعد از پیغمبر ای مردم رحبم کرده بعد از پیغمبر اما لو قدمتم من قدم الله اگر شما این گونه بودید آنی را که خدا مقدم داشته است شما مقدم می‌داشتید. و اخرتم من اخر الله اون این رو که خدا عقب انداخته بود شما هم عقب مینداختید و اقررتم الولایه. ولایت الهی رو در این عالم مقر شدید و الوراسه فی اهل بیت نبی و اونی که وراثت اهل بیت نبی نسبت به نبی مقر میشدید دقت کنید با آیه‌ای که قبلا خوندم لعکلتم من فوق رعوسکم و من تحت اقدامکم شما برخوردار می شدید از بالا و پایین. ولما آلا ولی الله اگر این کار می کردید ولی خدا گرفتار نمیشد. شد ولا تاش سحمون من فرائز الله سحمی از فریزه الهی قسمتی از فريزه الهی به هم نمیخورد ولا اختلاف اسنان فی حکم الله دو نفر در این جامعه در حکم خدا با هم دیگه اختلاف پیدا نمیکردند الا وجدتم علم ذلک من کتاب الله و سنت نبیه مگر اینکه علم اون حل اختلاف رو از کتاب و سنت مییافتید فاما اما فعلتم ما فعلتم ولی چه کنیم که کردید اون چه که کردید فزوق و بال پس بششید گرفتاریش را فصیح لامو لذی نزلمو ایمان غلبن یعنی به زودی هم کسانی که ظلم کردن متوجه میشن که چه گرفتاری هایی براشون خواهد بود حالا دقت بفرمایید. چرا من این بسوم را کردم دو تا حالا ادامه میدم به اندازه‌ای که وقت اجازه بده و های دیگر از خود امیرالمؤمنین در این رابطه از منابع دیگر اهل سنت در این رابطه که اونها متأ این رو نقل کردن چرا چون آقا ما اگر درد را نشناسیم هیچگاه به فکر درمان نخواهیم بود این واقعیتیست است من مذهبی مسلمین بعد از پیغمبر تا امروز مریزه و تازه به جای اینکه نشون بدن درد چیه؟ و حقیقت بیماری کدام است؟ راه رو گم می کنن بنده مثلا فرض کنید چشمم بیماره به من میگن همه مشکل مال اینه که شما به فکر معالجه پات نبودی؟ هم درد میکنه میگن همه مشکلات این است که موهای سرتو تو خوب نکردید اعصاب و مغزم کار نمیکنه به من میگن مشکل اینه که رنگ دیوار خونه تو خوب نزدی آیا امروزه در دنیا این همه مخالفت با علی و آل علی برای ردگم کردن شناخت درد پیکره اسلامی دنیای اسلام نیست آقا این تاریخ یعقوبیه هزار و خورده سال قبل نوشته شده نویسندش و هر مورخی، هر اسلام شناسی با عنوان یک مورخ اسلامی نمیتونه رد کنه این یک دوم این عویزره کی میتونه در دنیای اسلام نسبت به مقام عبیزر اگر مسلمان است تردید کند پس دو تا بحث اینجا مطرحه یا عبیزر و رو دردشناس قبول ندارید یا قبول دارید اگر اویزر رو دردشناس قبول ندارید مسلمان نیستید برای اینکه پیغمبر او رو دردشناس معرفی کردید ابیزر دردشناس چرا درد رو فقط در انحراف مردم از در خانه علی و آل علی معرفی کرده اما مردم چگونن وای از مطالب این گونه ای در ادامه مطلب میگه اویزر همینجور که این حرفا رو میزد عثمان به جای اینکه قدر طبیب را بداند و درد رو بشناسه به فکر درمان بیفتن و مردم نوشت برای معاویه که این داره اینجا موی دماغ ما میشه معویه گفت بفرستش به شام ببینم میتونم من ساکتش کنم یا نه پس یهرهو ال شام العلام معویه او رو فرستادن شام به سوی معویه و کان یجل سفل مسجد. و یغول و کمکان یغول و یچتم الییه ناس من یچتم الیه و یسمن و کان یقف و ال با به دمش تا اینجا دقت کنید. فرستادن شام می اومد مگه ول میکرد موقع نماز صبح حتی این کنایه از این ظهر و اصل و مغرب که هیچی به طریق اولا حتی صبح میومد دم در مسجد مینشست مردم که برای نماز میرفتند مردم متوجه میکرد بیماریچ حالا این بیماری رو چجوری بیان میکرد جا فیغول میگفت سخن ابیزر رو ببینید مردم دست دست داشتن میامدن مسجد نماز بخونن میگفت جاعت القطار تحمل و نار گروه گروه مثل قطار قطار شطوران که اهل دوزخن دارن میان مسجد ا داره مسجدی ها رو پش میده ابیزر کدوم مسجد مسجدی هایی که نماز میخونن علی رو لعن میکنن این مسجدی ها بناس به جایی برسن نه مسجدی هایی که نماز میخونن نقشه قتل ابی عبدالله رو بد می‌خوان بکشن فی در باب مسجد دمش مینشست و یقول میگفت جاءت الغطار تحمل النار لعن الله الامرين بالمعروف و تاركين له و الله الناهين عن المنكر و العاتين له میگفت لعنت بر اونایی که امر معروف میکنن ولی خودشون عمل نمیکنن لعنت بر اونهایی که نهی از منکر میکنن خودشون منكر دارن یعنی چی ما فعلا دواممون با غیر نیست ما مشکلمون از همین است که تو مسجد میان نماز میکنن و ادعای دین میکنن، اما چگونه دین داشتن؟